بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من جلسة كيف دهومين بيت أزابيوت البيري طاية البيري أبو ساق البيري رحمه الله وأسكانه فسيح جنات ميقوية فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وشربت بعد ان لو تر مورد شيرينية علم صوبات خياردان وإنك علم زمانی که مشغول بهش بشی دیگر چیزی تو را فریب نمیده از زرق و برق دنیا اینجا بعد از اون سخنانش این بیت را میاره میگه فقوت و روح بدون غیر از اون مزاق غیر از اون حس چشایی لذت و مزه خوشی که به تو دست میده در مقابل علم بدون یه چیز دیگه هم هست اون علم اون علم غذای روحته اون علم غذاست برای روح و تنتم جانت چنان چه صبح داشتی حقیقت قوت و غذای روح چیه ارواح المعانی؟ اون روح وحی خصوصا روح معناست زمانی که تو از اون روح وحی سیراب بشی دیگه تو گرست نیستی دیگه احساس گرست نیستی نمی کنی غذای حقیقی جان و تند روح و نفست حقیقت غذاش در وحیه در علم شرعیه ولیس لیسا به انطعمت و شربت نه در اون آب و غذایی که تو داری میخوری آب و غذا تو رو سیر میکنه تو رو سیراب ولی ولیکن باز دوباره گرست نمیشی اثر اون غذا از بین میره سوس میشی شب شام خوردی صبح سبحانه نخور نهار نخور چقدر میتونی تحمل بکنی اثر اون غذاه میره ولی اثر علم نمیره میمونه اثر علم نمیره علم تو را قوی میکنه هرچی بیشتر از اون علم فرا بگیری بیشتر قوی میشی ولی ضعیف نمیشی الا این که فراگیری را کنار بذاری دنبال علم شرعی نباشی کنار بذاری عزت گرفته میشه از ذستش میدی ضعیف میشی این فرق و تفاوت بینه آب و غذای حسی و معنوی حقیقت آب و غذا در علم شرعی آب و غذا علم باشه ای طالب علم چی میخواد بگه اینجا ابو سحاقی البیری حرف سخنش با ما چیه سر سفره صبحانه میشینید سر سفره نهار میشینید سر سفره شام میشینید دقیقه ربع نیم ساعت اشخاص متفاوتن تا سفره بندازن سفره جمع کنن بیش از یک ساعت وقتتون رفت به بساط پهن کردن و جمع کردن نهار و شام و صبحانه غیر از اون زحمت طول روزتون برای کسبی کردن و پول در آوردن و برنج خریدن و گوش خریدن همش به خاطر این شکم حالا به خاطر غزايه روح شقد زحمت كشيري شقد قران ميخوني در روز قبول داري كه وحي الهي روحه دگه درست الله جل وعلا اسم بحيش و غزاش روح روحا من امرنا روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نور وحي الهي وروح روح اون چيزي هس كه الله در ما دميده و ما زنده شديم روح تن ما را زنده كرد روح اس ما گرفته بشه ما ميميري غذای اون روح برای مندنشیه روحی از طرف الله و اونم وحیش که اسمس گذاشت روح غذای روح روح حقی اونه حقیقت زندگی در اونه اون روح رو نداشته باشی تو مردی اون روح را رو تو نداشته باشی تو مردی میمیری به فکر خودت باش توی که میترسی بر تنجانت بر این که اگر آب و غذا نخوری میمیری میری کار میکنی تو اینکه تشنه و گرست نمونی بدون که اگر علم شرعی هم نیامختی جانت ضعیف میشه و میمیری تبدیل به یک انسان مرده میشی الله هم در قرآن مشرکین را تشبیه بکی میکنه به مردگان اونجایی که میگه و ما انتا به مسمع منفل قبول اگر مشرکین را خطاب بزنی مشرکین نمیشنون همونطور که اگر مردگان را صدا بزنی اون مردگان نمیشنون مشرکی فرقی با اون مردگان ندارن و ما انتا به مسمع چطور مرده نمیشنوه؟ مشترک نمیشنوه. چرا نمیشنوه؟ چون مرده است. چرا مرده است؟ چون حاضر نیست. گوشش رو فرا بده به روح الهی، با روح الهی، روحی طرف الله زنده بشه. جسم بدون اون روح مرده است. مثل خیلی ها که میبینن تو خیابان میرن، میان نمیدونن که برای چی زنده برای چی کار میکنن. فقط هم هموغمشون کار کردنه. فقط جوم میکنن پول در بیارن. نمیدونن برای چی الله اون آفریده، نمیدونن. به کجا دارم میرن انتهای زندگیشون کجا هست و چی هست و چطور هست و چی قراره بشه به فکر این نیست آماده هم نیست که زمانی که روح از حلقومش میخوام بیرون بیارن چی خواهد بود ماها اینجا نشستیم ماها هم سهل انگاریم کدوم که از ما الان میتونه اعلان آمادگی بکنه بقبض قبض روحش که الان ملک الموت کنارش اومده سراغش اومده جلوه چشش رو میبینه اومده روحش رو بیگیره کدوم یکی از ماها آمادگی اون لحظه رو داریم سخته نه شما تصورش بکنید الان لحظه قبض روحمون است الان ملک الموت اومده با سربازانش به قبض روحمون کدوم دسته ایم اون دسته که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایان کما یقطر الماء فی السقا روحشون چکیده میشه همچون آبی که از کوزه چکیده میشه راحت کشیده میشه یا مثل پنبهی خیسی که از لا خار کشیده میشه تیک تیکه میشه و الملائکه باسطو ایدیهم ملائکه هم دستاشون بالا بردن و دونا رو دارن کتک میزنن و روحشون رو به زور و شکنجه دارن از تن و جانشون میکنن و تیک تیکه میکنن کسی میتونه تزمیم بکنه که روحش همچون آبی که از کوزه چکیده میشه از تنش جدا میشه آمادگیشو داریم نداریم نه, نه اینجا سخنان البیری هست با ما که غافل نشیم غافل نشیم از مهیا ساختن و آماده ساختن خودمون به اون لحظه فراق از دنیا که بدون توشه علم شرعی از دنیا نریم بار جمع کن از علم شرعی، بار جمع کن از علم شرقی همونطور که شکمت رو پر میکنی غذا میخوری دنبال سیریت هستی خودتو سیر کن با علم شرعی بخور، وقت بذار، باور کن اگر عمر خودمون همون قدر که ارزش میدادی به اون غذامون به تنمون، اون که نهار میخوردیم، اگر همون یک ساعت وقت میداشیم روزانه برای قرآن الله جللا بعلا، Allah همه حافظ بودیم. مهال شخص، بشینی پای قرآن روز دو ساعت، ولی خوب، قابل از دنیا بشه. بیش پای قرآن در یک حافظ قرآن نشه. راحت انسان میتونه یک ماه دو ماه حافظ قرآن بشه سخته نه آسونه؟ سر و رمز و کلیدش صبح بهتون گفته شما در عرض دو دقیقه راحت میتونید یک سفر از قرآن حفظ بکنید ولی که اون مغز شکوفا اون ایمان اون اعتماده به الله و اون اسباب و وسائل ابزاری که گفتیم بهتون صبح زمانی که شما اون ابزار و وسائل را بگیرید الله دلتون رو شکوفا میکنه و محیاتون میکنه بر اینکه که اون روح و معنایی که دارید میخونید تلاوت میکنید غذای جانتان بشه روحتان بشه فراموشش نکنید زمانی که درست وقتتون بدید غذای جونتون میشه گوشت جونتون میشه اون قرآنی که دارید میخونید ولی درست و دور از معاسی ببنام فواظبه و خود بالجد فیهی فان این الله انتفعته فواظبه موازبت داشته باش کفتم همونطور که به غذای تن ارزش میدی وقت میذاری نهار شام صبحانه سه وعده همون سه وعده نیم ساعت صبح نیم ساعت ظهر نیم ساعت شب همون نیم ساعت وقت بذار در روز برای غذای روحت برای قرائنت نیم ساعت برای حفظ بیشتر از اونم میتونی حداقلش دارم می وقت بذار حق داره اون روحت به همونطور همون تو که تنت حق داره بگردنت و و ان لنفسک که, که حق همون تو که تنت حق داره روحت حق داره بگرداند. گردنت و مواظبت داشته باش نه این یک روز بخونی یک روز نخونی نه قرآن نیاز به معذبت داره رسول الله صلی اللہ علیه مثل شطوریه که فرار میکنه ببندش بسن قرآن مراجعه حفظش تکرارش نخوندی فرار میکنه فراره فواظب هو و خود بالجد فی حالا این قرآن یک طرفش علم شرعه هم طرف دیگر و خود بالجد فی جدیت داشته باش جدیت داشته باش در طلب علمیت از سعی و تلاش خودت نمید الله اگر توفیقت داد که پای حلقه علم بشینی مغرور به خودت نشد الله هست که تو را اینجا آورد الله هست که منت بر سر تو گذاشت که تو بیایی اینجا بشینی توفیق الله بود و اگر محروم شدی مقصر خودتی و اگر محروم شدی مقصر خودتی اگر توفیقشو بهت داد این لیاقتی هست که الله در تو دیده و این منت را بر سرت گذاشته وهر همی رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند من یُرید الله به خیرا یفقهه فی الدین من یُرید الله به خیرا شخصی فقه و فهم در دین رو داره عالم به دین الله جل و علا با حفظش و فهمش الله خیریاتش خاصه یا نه بله خیریاتش خاصه مشمول رحمت الهی شده اون شخص اون شخصی که دنبال علم شرعی بوده و الله توفیقت کسب به رو بهش داده با تلاشش سبب شده که مرحوم بشه و این توفیق نصیبش بشه تلاش نمی‌کرد کوتاهی کردی تلاش نکردی محروم میشه خودت فلان مزاجو عذاب الله قلوبهم زیغ از خودشون بوده اگر توفیق هدایت رو پیدا نکردن خودشون نخواستن فلان او زمانی که خودشون دوچاره زیغ شدن منحرف شدن الله اونها رو از دین فاصله میده اونها رو گمراه می‌کنه الله سلب توفیقشون از هدایت میکنه. از تو هستی که برای خودت ورق میزنی از خودت سلب توفیق میکنی فلما مزاغو قرآن نخونی دنبال فهم و تفسیرش نباشی خودت سبب شدی که گمراه بشی خودت سبب شدی که محروم بشی نگو الله نخواسته نگو الله این توفیقو بهم به نداده نه تو خودت نخواستی ولی زمانی که تو قدم برمی داری بعد الله گشایش به تو میره راه رو برات آسون و آسوده میکنه اسباب وسایلش برات فراهم میکنه بدون که الله جل وعلا خیریتت خسته. تو رو خواسته الان این لحظه‌ای که شما اینجا نشستی در این حلقه حاضرید بدونی الله خیر شما را خواسته الله شما را دوست داره توفیق داده منو من و تو که بشینیم پای ذکرش یادش چند تا آیه و چند تا حدیث بخونیم فن اعطاکه الله تو اعطای الهیه اگر علم شرعی رو توفیقش الله بهت داد انتفعته تو ازش سود و بهره بردی حقیقت سود و بهره بردن از دنیا اینه حقیقت منفعت در اینه تو علم شعی را کسب بکنی منفعت در این نیست که تو چقدر امروز پول و کسب و درآمد داشتی اون نفع و سود نیست سود حقیقی کجاست چقدر قرآن حفظ کردی چقدر حدیث حفظ کردی و فهمیدی و درکش کردی این حقیقت کسب و تو کاسب نیستی این حقیقت تجارت با الله جل و علا واتر همین الله جل و علا به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در قرآن چیه؟ به این که زیادی و زیاد در علم را از الله بقاهه الله تفیق علم را بهش بده فزونی در علم و قل رب زدنی علما نگف مالا نگف قووتا نگف قوت نگف مال نگف سربت نگف زنبچه و قل رب زدنی علما این حقیقت کاسبیه سان کس بکنه علمشو بیفزایه این حقیقت فزونی و کس بکاسبیه و قل رب زدنی علما عزّ اللهم بخوا، اینجا کاش منشأشیم، درست وقت منو میدیم، ولی که غافل نشیم از اون ذکری که بعد از نماز صبح سنتی که بیم، اللهم اني اسالوك علم نافع، اللهم اني اسالوك علم نافع و رزقان طيب و عمل متقبلا، اللهم اني اسالوك علم نافع، اول قبل از توفيق عمل پيدا کردن و رزق رزوي پيدا کردن اول شيء؟ علم نافع، علم نافع، علمك تازش تازهش بهره سود ببری. غزای روح و جان و تن است این اهمیتی چه علم اولی که صبح چشت باز کردی نماز صبحوندی اولین چیزی که از الله میخواهی چی سوالت از الله جل و علم هر روز از دل دعاکو الله ترى محروم ناس از از زیاد از اون علم شرعیش اللهم نات میذار بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در قران در ازای اون علمی که یادش داده به رسول الله صلی الله علیه و الله جل و اعلی میگه ما لم تكن تعلم علمک کی کیبت یاد داد الله جل و الله جل و علا داره به یاد میدن این اون پنده اندرزایی که داریم میخونیم از سخنان الله جل و علا پس علم نیازمند دو تا چیزه یک جدیت و اجتحاد کوشش تلاش زحمت یک اولیش فواظب هو خود بالجد علم نیاز به جدیت داره اهمیت داره علم باید زحمت بکشی براش دوم استعانت با الله جل و برای اینکه توفيق فوزوني علم را به ايش بده و قره بزنت يا علما وقفلنا شي تاسينك هذا الله جل وعلاه بتلبي انك الله شاء و راه شمر عالم بكونه علم الربي ابزاي اگر به رسول الله صلي الله عليه وسلم ني الله توصي ميکنه ما از باب اولا بعد بين توصي الله عمل بكنيم هم تلاش و زحمت بکشيم هم از الله بتلبييم کہ به ما توفيق بده و محروم نسازه از طلب علم شرعي 19 مين بيد و اين اعطيته فيه طلابا وقال الناس إنك قد علمت بدر بعض نسخها وإن أتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت وين أعطيت أو إن أتيت فيه أكر علم شرعي وكاسكادي وبهربوا دي, دي كاسكادي علم شرعي وقال الناس مردوما مغفتا إنك قد علمت انفرد گرفته درس خندى نفس مردوم مشهور شدی به اینکه تو طالب علمی مردم از رفتارت دیدن فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبیخ علمت فهل عملت یک هشدار داره میده برای اینکه ما مغرور به علممون نشیم مغرور به تحصیلمون نشیم فریب حفظ ندخور فریب علمت نخور میگن میشه سفری بخوره حافظ قران هم باشه ولی داستان و جریان ذل خویسرای تیمی چی بود غنیمت بعد از جهاد مسلمانان کست کردن، به دست رو وردن، فکر نکنیدم که دلخوی سره تمیمی هم شخص جاهل و نادانی بود، نه. اهل قرآن و اهل تحجد همان. شیفته بود نسبت به اون علمش، شیفته بود نسبت به اون حفظش. خود شیفتگی داشت، مغرور بود، بعد دردید. رسول الله صلی الله علیه وسلم که برش وحی میشه، به عده میده و به عده نمیده و به عده بیشتر و بتتابعين بارمي خورميات نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل يا محمد وكمال بي أدبي يا محمد الله أكبر شو تجرأت بيدك هذي بياتين شيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد خطاب قرار بده كوستاهي بي أدبيه عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفوا إيمين دازم يقول ومن يعدل إن لم عدل أي أمنني الله على أهل السماوات والأرض فلا تأمنوني الله مرأ أمان الدار أو صمونها وزمين قرار بده به وحی شو رسول الله نازل بکونه و انت خوابش بکونی به وحیش بعد تو بیای در امانت من تنها وارد بکنی تو مرا امین نشموری نازل الله امین باشم نازل تو امین نباشم تو هم سالت دل خویشره بعد رسول الله هشدار میگه سگان جهنمی سگ حافظ قران هم باشه سگ چرا سگه اقراون القران لا يجاوزوا حناجرهم قران میخونن هم سال این تهجد میخونن صدای خوبی دارن حافظ قرانن ولی از حلقومشون پایین نمیره. میره لا جاواز پایین نمیره. چون محل در کجاست قلب دیگه قصر زبانه دارن میخونن تو قلبشون نیست از اون قرآن. از اون فهم قرآن. مجرد قرائات تلاوته قرآن رو درک نکردن اگر زنده باشم رسول حسنم میفرماین اگه زنده باشم مثل قوم عاد اونها رو نابود میکنم هلاکشون میکنم چون قرآن میخونی در این بر این نیست یا حافظ قرآن شدی تو یک فرد نابغه ای یا کار نابغه ای را انجام دادی. این حفظ قرآن خیلی راحته. همونطور که گفتم یک ماه راحت میتونی حافظ قرآن میشه شخص مواظبت داشته باشه طبق برنامه بره جلو یک ماه راحت حافظ قرآن میشه. سخت نیست. می نیازی نیست که انسان فخ فروشی بکنه. خیلی راحته. ولی اینکه چون کسی این کارو نکرده همه غافلان. اگر یه کسی اومد بعد مردم به چهچه چه چه چه چه خوشی داره این طرف خود خودباوری و شیفتگی میشه ماها یه طرف سرد میشیم که اون شخص اون دچار خودشیفتگی باشه خودش هم یه طرف دیگه فکر میکنه کار بزرگی انجام داده این خودشیفتگی سبب میشه گمراه بشه مسطر خویسر خارجی میشه فردا عقل یک مورچه از عقل این شخص بیشتر بشه چطور چرا مورچه رسول الله صصنم اینا رو تشبیه سگ میکنه نفهم از سگ میشن ببخشید سگ نجس رسول الله صلی الله و آله نمیکنه تشبیه سگ نجس میکنه چرا سگ نجس چون خودش آلوده است دیگران را هم آلوده میکنه ولی خب اینجا من مورچه آوردم الان در مقابلش یک مورچه شرفش از اون سگ خارجی شرف یک مورچه بالاتر کجا به چه دلیل قصه سلیمان که یادتون هست علیه السلام قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساكنکم لا يحطمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون فتبسم ضاحكه من قولها وقال ربي يوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي خيلي اياه قشنگ وزیبای چوا به معالي این اایه دقت میکنید اولا به اینکه الله برپیغمبرش مرچه سر راهش میاره شرف امورچه ناز الله جل و علا که اینجا سخنش را اینجا یاد میکنه به زبانان خودش از مرجه های دیگر همچنین توفیقی که الله به سلیمان داده این علم سخن امورچه شرف مقامه جایگاهه چارم خود سلیمان و قدر این نعمت رو دونستان و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک ان نعمتک بار الها این نعمت ولی که نوکریک علمی رو یادش داده به سلیمان الله جل وعلا به سلیمان و قدر این نعمت رو میدونیک این نعمت الله جل وعلا سخنان خودش نه سخنان مورشه سخنان خودش رو وحی کرد بر محمد مصطفی ام به ما گفته قرانش چقدرش دونسین اگه قدرش میدونسین میخوندیم حفظ میکردیم میفهمیدیم چون قدرشو ندونستیم نخوندیم دنبالش نبودیم فتبست فتبسم ظاحکن من قولها الله این توفیق رو بفهمه فتبسم من لبخند میزنه خنده بعد میزنه ضاحكا من قولها از سخنان اون مرچه سخنان مرچه چی بود مگه که این چینی شکف زده میشه و اون جا میخند سلیمان و بعد بر برمیگرده چی بود یک سخنان حکیمانه از درک و شعور و فهم که گفتم اون سگ خارجی ازش محرومه چه فهمی و قالت نمله يا ايها النمل خطاب به هم صحبتي خودش همسغانان خودش از برج ها يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم بالتخونات وبربغات بلونهاتو چرا لا يحطمنكم سليمان زيرپا لهت نکنه اون سليمان و سربازانش له نشي شما ضعيفي بیچاره میشيد ميميريد بر بگرده می رونه جان و تنتون رو حفظ بکنید سگ خارجی مردم به خیابان بریزید به زینگیران شده بریزی تو خیابان پاسگاه رو آتش بزنید فلان بکنید مردم رو آواره میکنه بدبخ میکنه خار میکنه خودش نجسه و از نجاست خودش به دیگر آمیده خودش دنیا دوست و مال دوست به خاطر دنیا جون خودش رو جون مردم را به خطر میندازه نجاسته نجاست نیست همی میگه و هر امامی رسول الله صلی الله و چی؟ کلاب اهل النار. اون شخصی که این چنین مثل ذوالخویسره تمیمی تکفیری باشه، خارجی باشه. اساس تکفیر از اینجا شروع شد دیگه. اساس تحکیم به شرع خدا و این شعار از ذوالخویسره شروع شد. ان الحکم والله لله شعار خوارج و حکم از آن الله. تو در خلاف حکم الله عمل میکنی با هم همین گفتن به علی بن نبی طالب و هم همین گفتن تکفیرش کردن بعد اینها رو ریختن. هم خونه عثمان الله عنه و هم خون علی بن جز فتنه تکفیر با خروج بر علیه حکام بود مگه این سگان خارجی چون محروم بودن از علم شرعی از فقه و فهم سخنان الهی اگر این سخن مرچه رو خوب درکش می کردن این سخن مرچه که الله تمجید می کنه تعریف می کنه ازش و برای این سخنان پیغمبری هم مسخر می کنه که اون پیغمبری هم لبخندی می زنه و می خنده همه شیه جل الله جلاله بی این فعل بی فهم فهمت و وسیع کن برو دنبال علم بدون علم تو را نجات میده ولی کن زمانی که جهل اومد به جای اون علم و فهم نادرست برداشت نادرست تو میشی منحرف گمراه علم سبب میشه که تو از این گمراهی در بیایی تو سگ خارجی نشی علم اینچنین به تو شرف میده اگر یک مورچه شرف پیدا کرد که نزده الله عزیز بشه نامش و یادش جاودان بمونه و در قرآنش از سخنان خودش در اون حفظ بکنه سخن یک مورچه را تو چی میشی با علم تو میشی چی میشی با اون فهم و درک دین الله جل و علا ارزش علم شرعی علم تو را بالا میاره علم تو ارزش میده فلا تامن سال الله عنهم خود رو در امان ندونا از اینکه حالا من طالب علم شدم علم شرعی کسب کردم روز قیامت رو سفیدم پرونده اعمالم خالیه و بهشتیم نه رسول الله الله علیه و سلم می‌فرمایا لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع روز قیامت تكون نمیخوره تو این چهار تا چی سوال بشی اولیشی از اونها از اون چهار تا و منها علمه ماذا عمل به در مقابل علمت سؤال مشين. علمت تو در مقابلش مسؤولي. و الله هم جل وعلا در مقابل در مقابل علم تحسس سؤال خواهد فلا تأمن سؤال الله بتوبیخ خوت محياكن بنتوبیخ الله جل وعلا بان سؤال و باسخص الهی زمانی که جلوش و خواهد گفت علمت فهل عملته؟ ياد گرفتي ايا عملم كاردي یاد گرفتي ايا عملم كاردي فرأس العلمي. تقوى الله حقا وليس بان يقال قدر استا فراس العلم تقوى الله رأس العلم سر العلم احلى علم تقوى الهي حقا حقيقتش مين تقوى نداري اذا الله نمترسي دون بال حلال حرام نيستي براد مهم نيست از اون سخنت از اون زبان آلوده از ناسزاگویی و بدگویی و پرخاش و غیبت و تهمت و نمامی و خبرچینی و تو که تقوای الله رو نداری خودت محاسبه نمیکنی در مقابل حرفت و رفتارت بدون که تو اون سر را نداری اون سر بر تنت نیست راس علم سر علم که با اون تو زنده میشی ببینی بشنوی تو مثل همون مردگانی هستی که در قبر خوابیدن مثل مشتکانی که نمیشنون سر را نداری دیگه که ببینی بشنوی اگر تقوای الله را داشته باشی از اون علم من میشی میبینی و میشنوی مثل سلیمان که شنید سخن یک مورچه و دونست که این منته الهی در حق خودش دونست این مننت این نعمت سر راهش گذاشته و الا تو نسبت به نعمت های الله جل و علا چی میشی بیتوجه میشی کفران نعمت میکنی چقدر از اون مردم که کفران همه چیز گرون شده هیچی نیست و نمیدونم الله چی میشه و حالا چه بر سر ما میگذره و حالا دیگه کسی بچه هم نیاره و راس العلم تقوا الله حقا همونطور که الله جل و علا در قران میگه انما یخش الله من عباده العلماء حقیقت علم با شدن ترس از الله جل و علا وليس بان يقال لقد رأست ليس العلم يعني حقيقات علمي انيس كه من رئاستي بمن سپرده بش بش مدير مدرسه يا مدرس فلان مدرسه يا مردم بگن ها فلاني سخنرانيش خيلي خوبه خطبهش خيلي خوبه حقيقه علم كرس الله جل وعلا مراقبه الله جل وعلا در مقابله اعمال كليد علم ياد گرفتن علم دنيسي الله جل وعلا در سوره بقره يك صف مونده به اخر دين اخر ايه الدين چی میگه میگه الله ويعلمكم الله تقوای الله رو داشته باشید و الله الله بتون میاموزی یادم میده توفیق علم رو بتون میده خب حالا بیام برعکسش بکنیم تقوای الله رو نداشته باشیم علم نمیاموزیم نه محروم از علم میشیم محروم از این خیریت میشیم علم مجرد معلومات نیست که من بیام بگم این فعل این فاعله این اسم این جار این مجروره یا بیام تو اصول فقه بگم مطلقه علم نیست این مجرد علم است این گوشه معلومات علم حقیقتش شیه تقوی الله جل وعلا وشناخت الله جل وعلا حقیقتش اینی که الله را در خودت و برای خودت خیر ببینی در مقابل اون افعالش الله را در حق خودت خیرخواه ببینی و برای رسیدن با اون خیرات الهی زحمت بکشیه الله خیرات رو خاصه سفره خیرم برات پهن کرده من بیام از اون سفره بخورم قرآن یک از خیرات الهی بیام این قرآن رو حفظ میکنم بیام این قرآن رو بفهمم چه چی, چی سبب شد که من این سفره بشینم این سفره قبل از سفره سبحانم باشه صبح سب بعد نماز صبح وقت خودم رو بذارم اول بگم سفره خدا بعد سفره شکمم چه چی, چی سبب میشه محاسبه نفس حساب و کتاب جلوه الله, جل الله جل وعلا ی ساده الله جل تقوا سبب میشه که انسان سر سفره بشینه ولی اگر تقوا نباشه اگر محاسبه نباشه اگر ترس از الله نباشه چی میشه؟ هیچی بیتوجه آلا فردا آلا نه پس فردا براش مهم نیست شخص که سر سفره بشینه بخوره یا نخوره قرآن بخونه یا نخونه مهم نیست براش ولی غذا خیلی براش مهم ها. غذا براش مهمه. پنجشنبه روزه گرفته دیگه جمعه دیگه مالو شکم میشه دوشنبه روزه گرفته سه شنبه بد بخوره روزه رو به چشم گرسنگی بهش نگاه میکنه حالا روزه بگیرم دوشن پنجشنبه حالا گرسنه میشم راسالم درد میکنه حالا ضعف میارم عبادتو به چشم ضعف نگاهش میکنه نه به چشم قدرت نه اینکه این سبب میشه تقواش بیشتر بشه با الله نزدیکتر بشه سبب قوت روح تنش بشه نه نگاه قوت نمیکنه کنه به عبادت چی میکنه ضعف حالا مریض یک مسئله دردی داره رنجی داره یک مسئله بلی که انسان زه داشته باشه در مقابل طاعت و عبادت در مقابل این صفری که الله برامون گذاشته از قرآنش از وحیش این محرومیته حقیقت محرومیت در الله صفری بذاره بعد انسان در مقابل اون بیتوجه باشه بسدوومین بیت ازابیات تائیه ام البیری و افضل ثوبی کال احسانو لیکن و در بعض سبتان لا ان ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وانت باق وتوجد إن علمت وقد فقدت تسيحة شو أبو البيري ويريد يو أفضل ثوبك بهترين لباس جامعت وافضل ثوبك الاحسان بهترين جامعت ولباس التقوى چيه الاحسان جبريل زمانكمات زاني بزاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاست از ايش سؤال پرسيد درباره اسلام بعد ایمان بعد احسان اسلامه عظام گفتم ما مسلمانين ظاهرش عملش ایمان بالاتر از عمر قلب رسيد بس المؤمنين ولك محسنين الله يحب المحسنين درجية خلي اهل أهل شدن شدان زمان يجيب جبرئي سأل برسيدان الله, الله عليه سلام ما الإحسان كيف فرمودن؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى إن جيه الله جل وعلا إن تقوى الله جل وعلا إن جم أفضل ثوبك الإحسان درجية تقوى بهترين لباسه بدرجي جيه إحسان بدون مراقبة الله رودعشتان وترسيدانه أذل الله جل وعلا إن بهترين لباسه والباس التقوى ذلك أخير إن بهترين لباسه بين تقوىها من سماش نمی‌رسه مگر بهش نمی‌رسه مگر با علم شرعی تو هر چقدر شناخت به الله داشته باشی ازش بیشتر میترسی ازش حساب میبری و حرفش رو جلو چشمت قرار میدی وقتی که الله رو نشناسی چطور ازش حساب ببری باید الله رو بشناسی که ازش حساب ببری بس تقوا هم سبب حصول علمه علم همونطور که علمم سبب حصول چیه تقوا این دو تا با هم از هم دیگه جدا نمیشه علم و تقواس و تقوا هم با علمه اگر کسی دیدی از الله میترسه بدونی که این الله را میشناسه علم با الله داره و اگر نمیترسه یعنی چی علم با الله نداره تراثوب الاساء تی قد لبسته انتبه مواضح باش فکر نکن دنبال علم شرعی هستی تقوی نداری جامت پاک و تمیزه جامت قشنگ و زیباس اگر جامعه تقوی را نداری انگار که تو جامعه نداری اگر لباس تقوی نیست انگار لباسی نداری زمانی که تو بدی زمانی که تو بددهن و بدزبانی بداخلاقی علمت به دلچت میخوره من ادعای علم بکنم بعد بیام بد و پدر و مادر بگم میگه میشه چه علمی من آموختم چی یاد گرفتم من علم من میگه که من بنا این بدی و ظل بکنم الله جل وعلا در قرآن شيء بيجدر حق والدين وخفذ اللهما جناح ذل من الرحمة بقول هاي الرحمة تتفارش كون زير بوي فداره ما دريت وأقول رب الرحمة هما ربياني صغيرة دعاء خير برا إنه هما كون يدعوين رحمات ولا تقلهما أفن ولا تنارهما أفهم نقي بداره ما دريت نارش ونكوا إنصداد نبري الله كسي إنصداده بلا برد إني قرآن خونه الله ميجا إنصداده بلا نبر در مقابل فداره ما دريت بدي إنصداده بلا ببره أو بشي خونه عز قرآن قرآننا خونه قرآن بلد نسي درباز وضافي <تصفيق> ثوبك الاحسان وضافي ثوب نظاف لباس كامل لباس زيبا و وضافي يعني لباسه راض ضاف كن وضافي ثوبك الاحسان آراسته کن اون لباست زیبا کن همونطور که تو می‌ذنی چطور لباس پیرانت اینجا قشنگ نشستی اتو شده اومدی با اون پیراهن قشنگت عطرم زدی جامعه دلت هم اینجوری آراسته کن اتویی بزن قرآنی بخون حلمی بیاموز لباس تقواست نیاز به آراستگی داره برو به اون علمت همونطور کجا داشتیم دو تا شرط داشت کسب علم یہ کی جدیت و دومیش استعانت به الله جل وعلا اینجا هم از دعاهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که استعانت به طلبین برای اون جامعه قلبمون دای است حسابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه البانی هم تصحیح میکنه در صحیح جامعه اللهم زیننا بزینت الایمان و اجعلنا هداتا اللهم زیننا زینت الایمان ایمان زینت زیبایی داره لباس لباس تقواس اللهم زیننا بزینت الایمان این زینت زیبایی آراستگی ایمان بر قلب لباس تقوا است از الله بخواه که لباس تقوا را جامعه قلبت قرار بده لباس قلبت قرار بده تقوا لباس قلبت باشه از الله بخواه همونطور که علم از الله میخوای و قل رب زدنی علم از الله بخیرب زدنی علم صبح نما صبحنی بگو اللهم انی اسلک علما نافعه الله حم جل علی چی بخوا زیبایی و آراستگی ایمان بار الله هزت ايمان و تقوى ميخام اللهم زيننا بزينات الايمان وجعلنا هداة مهتدي تویی که باید قلب تقوى باشه ولی که برادر ای دوست ابو سحاق ميگه برخلاف اون لباست بی تقوىی ميبینه ش علم يا موخدی این تقوىس بسیوم اذا ما لم يفتك العلم خيرة فخير منه ان لو قد جهلت اذا ما لم يفتك العلم خیرا اگر نفهمی دين يوم مختاز این دين خیر نه نیافتی، کس نکردی، انگار که تو هیچ خیری و بهره از دنیا نبردی، محروم از علم، محروم از همه چیزه. حالا میخواد مال دنیا رو جمع بکنه. چیزی که تو با خودت به اون دنیا نبری چیه؟ ملعون، دنیا ملعونته. ملعون ما فيها. چیزی که تو با خودت نبری، توشه و باری برای آخرتت نباشه اون بار نیست. اون عاره و بال گردنت. حقیقت بار چیه؟ اون چیزی که با خود از این دنیا ببری، هم بکنی این حقیقت واره ایلا اون چیز نه اینکه تو ازش بهره نبری از اون غیر علم شرعی که وقت تو جانت دادی براش بلکه چی در مقابلش باز میشید. از مالت الله میپرسه تو چیکار کردی از چه راهی به دست وردی؟ و در چه راهی صرفش کردی کسی که جاهله چطور میخواد بفهمه که این مالش که داره صرف میکنه در حلاله در حرامه جاهله در راه حرام خارجش میکنه بعد روز قیامت هم میشه مال شد خیر براش یا شر شر بلی علم علم همش خیره علم توشه هست براد باری که با خودت میبری با اون دنیا با اون دنیا ازش بهره میبری اون علم نافع که سبب شده عملت آراسته بشه سبب شده که تو تقوی الله داشته باشی اذا ما لم که العلم خیرا فخير منه ان لو قد جهلته اگر تو از اون علمت بهره نبردی عمل نکردی با اون فخیر منه بهتر از اون این بود که تو جاهل میموند ای کاش که تو نمی اومدی اصلا چیزی نمی آموختی تویی که یاد گرفتی و عملم نمی کنی اون علم به چیت میخوره؟ ذلخ و ویسره تایمی حفظ قرآنش فهم قرآنش به درد چیش خورد اون فهم نادرستش کجش فهم داشت ولی فهمش کج نادرست اشتباه غلط این فهم غلط از کجا آمد؟ از خود باوری از استغناء، از وحی نبوت، فکر بینیاز از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اون کسی که خودش را بینیاز از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میدونه مثل دلقوه سر تیمید چگونه هدایت بشه؟ غلط میکنه یا نمیکنه؟ غلط کرد یا نکرد؟ سبب غلطش چی بود؟ اون خودکفایی، اون خودباوری، خودکفاییه فکر کرد که علم خودش، حفظ قرآنش، کفایتش میکنه مسقنی شد از رسول الله صلی الله علیه و وسلم مگر میشه ما مسقری باشیم از سخنان رسول الله صلی الله علیه و وسلم الله جل و علا میگه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم وانزلنا الیک الذکر لتبین قرآن اگر نازل شده برای اینکه تو تبیین بکنی تو بگی مردم که مفهوم و مراد چیه نه اینکه هر کس به سلیقه خودش بیاد هر چیزی خاص از قران برداشت بکنه اگر اینطوری باشه تو میشه ذل خویسره تو میشه چی زلخویسر اگر جاهل میمون قرآن حفظ زمی کرد بهتر بود از اینکه که زلخویسر شده خارجی شده سگ شده درست یا نه؟ لاقل جاهل میموند پس علم علم را بدون از کجا میگیری علم نافع باشه اللهم نسد که علم نافع علم درست باشه بدون که از کجا میگیری از کی میگیری بدون علم را از هر کسی نمیشه آموخت به هر کسی اعتماد نکن چنانچه طابعی میگفتم می فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم من السرين ميقى وزرقان تابعين قصا زمان عثمان رضي الله عنه شهادات مرسة وعند غوي خوارت شروشوت سموا لنا رجالكم ان هذا العلم دين فانظر عن من تأخذون دينكم إن علم دينه بدون إدكاس كده رجال ميقري هركسي كاسي بذير وفتن بفهمين اون شخصی که گرد و غبار تو دینش، دیانتش، تو فهمش، مثل ذل خویسری تمیمی علمش مندرآوردی و قصه و داستان و خواب و خیال و داستان و حادث دروغ و ضعیفه، بر حذر باش ازش. این علم نافع نیست. این بوابه لگردن تو روز قیامت. سر حلقه نادان و جاهل نشید رفیق بد کیه؟ اون کسی که در آتش میدمه تشبیه رسول الله صلی الله علیه و آله بر حذر باش. یا بود رو بد میکنه یا پیرهنت رو میسیزنه تو وقتی که شخص میدونه تکفیریه خارجیه مبتدع و ضال گمراهه آیات الله آیات صفات الله را تعویل میکنه تشویح میکنه یا هر انحراف دیگر از سب صحابه و غیر توشه است تو مگر بهتر از اون تابعین و تابع تابعینی که اگر مبتدع میومد آیه میخد دست گوششو و گذاشتن مبتدع گمراهی میومد میگفت که آیه ای میخوام بخونن آیه ای میخوام برات بخونم دست گوششو میگذاشن میگفتن ولو آیه ولو نصف آیه ولو نصف آیه نصف آیه ام نمیخوام بشنوم که حرف سخنی از اون مبتدع و گمراه ام حرف تو گوششو نره بعد تو نشستی سر حلقش سیای لشکرشون نام کردی و نسبت به خودت مطمئنی که آلوده نمیشی به خود مطمئن نباش حداقلش میدونی چیه نشستن در حلقاتشون یا گوش دادن به حرفاشون حداقلش میدونی چیه حداقلش مفتول شدن به فتنه بنی اسرائیل زمانی که مفتون سامری شدن الله جل و چی میگه میگه و اشری فی قلوبهم العجل بکفرهم چی بود کفرشون سامریه تلاها را جمع میکنه یک گساله ای را میسازه بعد آثار از اون جبرهی را داره پرتش میکنه بر اون گساله ای را که به عنوان یک الهی گذاشته براشون صدای ازش در میاد صدای یک چیزی که جامده از خودش هم صدا نداره یک بوتی که با دست خودش اون سامری ساخته به عنوان یک خدا میپرستنش یک صدایی از یک چیز جامد نامفهوم سبب شد که الله جل و علا میگه خب به اون گوساله در دلشون با دلشون آمیخته بشه و اون شریب و شرب نوشیده بشه قلبشون با خب و محبت و دوست داشتن اون گوساله گوساله جامعه دیدن با دست خودشون درست کردن فقط یک صدایی ازش در میومد شتافری بهشون داد برکت داره خیر داره نا کنید بارون اومد خواستیم بارون بارون اومد خواستیم فلانی چیز فلان چیز شد. حالا یک فردیه جامعه‌ای اهل پوشیده ولی گمراحه منحرفه و ماده سخن اسلبی میاره ولی میدونید سگ از سگان جهنمه یا خاریجیه یا منحرفه گمراهی داره میدونید خودتو اون مشکلش میدونید نه حالا چارت حریزیف اون وردلشکل نداره خیر که توش است کی گفت اون عجل سامری خیر توش نبود کی گفت که صدا در نمیاد کی گفت که طلا نبود از اون طلاهای گرانبهای بنی اسرائیل ساخته بودنش دیگه و ساخته بودشون سامری ولی که تو کی میدونی شر از شر بر هزار آش نشست و برخواستد و اون صاحب شر که میدونید شر پنپذیر نیست اون شخصی که دست نمیکشه از درو گفتن بر رسول الله صلی علیه یا از تحریف آدات قرآن و سنت و از تعویلش میدونی دست نمیکشه میدونی که با نصیحتت هم هدایت نمیشه تو چرا از وقت هایی که الله جل و چرا به تو داده چرا به امیدی چرا شعائر تعظیم نمیکنی دین را عظیم نمی شمالی برای خودت چرا ارزشش را برای خودت حفظش نمیکنی با پرهیز از این افراد که رسول الله پرهیز داده کتاب سید خود محمد خود فلانی فلانی میخونه بعد میاد تفکر خارجیش تکفیریش حالا حکام که هیچ ما رو تکفیر میکنه زبانه به غیبت باز میکنه زبانه به افترا و تهمت باز میکنه به چی که آلوده نمیشه یک بابی بود یک فهم نادرستی بود یک جا پاش لغزید، یک جا نصیحت شرع را رو سر چشنه گذاشت. ان هذا العلم دين فانظر عمن تاخذون دينكم ارا بالشيخي غرف نا انك خوبي هم داره انك شهيد بود انك كشته شد بمظلوميه انك كتاباش تفسير قرانه علمم نداش با اون جهلش اومد گوش فرادات تو کلاساشون هم شرکت کا کلاسایی که میذارن و این کتابا خونده میشه اخرام میشه چی یک شخص خارجی میشه دل خویسری تمیمی نصیحتش رو گوش نکر توقعه داری که بش ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن Allah, این راه اشتباه این جاده کجه میدونه که این شخص منحرف ها بلی سنگش میزنه نمیزنه شما خوبیهاش نمیبینید این مثال فرد رو زدم جایی طائفه از جای گروه هست. و جماعتی از جماعت ها فرق نمی کن خوبیه ها شما نمیبینید نه والله چشمه از خوبیها ها کور نیست ولی اون بدی زشته اون بدی ننگه اون بدی پسته اون فکرت القویسری پسته به خاطر فکرش رسول الله صلی الله علیه و میگه سگی از سگان جهنمه میگه خیر خوبی نداشت میگه حافظ قرآن نبود چرا رسول الله نگفت که حافظ قرآنه چرا گفت سگه چرا نگفت مسلمانه ایمان داره به الله و رسوله چرا نگفت که نماز میخونه چی گفت گفت سگ تشبیه به سگش میکنه بر حذر باش در دینت با کسی شوخی نداشته باش بدون دینت رو از کی میگیری و اون چه فکری داره گوش به هر کسی فرا نده جاهل میشودی بهترت بود اگر جاهل بشی در اون جا برات بهتره سلامت دینت سالم مونده در دینت بهتره از اینکه تو یه چیزی بیاموزی که وال گردنت باشه خب به همین حد اکتفا میکنیم سبحانك اللهم الحمد سبحان الله والحمد الله محمد و على محمد